کتاب افسانه های مردم اسکاتلند نویسنده دونالد مکینز، ترجمه سارا شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده عظیمه علی گلزاده داستان فینلای و گولها فینلای شکارچی با خواهرش تو کنه کوچیک نزدیک کوهستان زندگی میکرد اونجا گولهایی از نسل بیرا ملکه زمستون زندگی میکردن برای ستایفه گولها عجوزه بسیار پیر ترسناک درند خو زیرک و حق باز بود او تودههایی از طلا و نقره در قار خودش داشت با یک شمشیر جادویی دست طلا و یک عصای جادویی وقتی با عصای جادویی خودش به یک ستون سنگی میزد ستون تبدیل به جنگجویی میشد و میتونست با شمشیر دست طلایی جادوگر با همه بجنگه جنگه. قوی ترین و بزرگترین قهرمانان هم قادر نبودند در مبارزه با این جنگ جو پیروز بشن. روزی فینلای جوون همانطور که از کلب خارج می شد به خوهر شوشدار داد پنجره ای رو که در جهت باد هست باز بذار و اجازه بده که آتیش خاموش بشه اما خواهرش به حرف او توجه نکرد پنجره رو به جنوب رو بست و پنجره رو به شمال را باز گذاشت و آتیش را هم خاموش کرد تا ببینه چه اتفاقی ممکنه بیفته گول جوونی که قد بلند و رشید بود و قیافه دوست داشتنی داشت وارد خونه شکارچی شد قول جوان دختر را راضی کرد در مورد اومدنش با برادرش حرفی نزنه دختر هم قبول کرد مدتی به این ترتیب گذشت روزی فینلایت در راه برگشت به خونه به کلبه کوچیکی برخورد کرد که اونو قبلا ندیده بود تعجب کرد که چه کسی ممکنه تو این کلبه زندگی کنه؟ به سمت کلبه رفت و وارد اون شد پیرزنی که کپی کل بنشسته بود به او خوش آمد گفت و پرسید نام شما باید فینلای باشد. درسته شما کی هستید و از کجا اومدید؟ منو پیرزن دانا صدا می کنند. اینجا اومدم تا از تو مراقبت کنم و راهنماد باشم. متاسفانه تو نمیدونی که زندگیت در خطره. بول جوون خواهرت را افزون کرده و منتظر در اولین فرصت با شمشیر تو را بکشه وای بر من که چین خواهری دارم با این هشدار شکارچی به خونه برگشت و سکهای درنده خودش رو به سوی ها رها کرد و ظرف جوشان آب را روی او ریخت غول با ترس و وحشت به سمت در دوید و به سرعت به سمت غار خود فرار کرد و خواهر شکارچی را هم با خودش برد شکارچی تنها در حالی که از انتقام قول‌های بزرگتر می‌ترسید در خونه نشست. او دلیل محکمی برای ترس خودش داشت چون وقتی قول جوون به غار خودش پاگذاشت برادرش فریاد زد من این شکارچی گستاخ رو نیست و نابود می‌کنم. پدر قول‌ها گفت نه بهتر خودم این کارو بکنم. عجوزه خاکسری درنده خو کانان، نالید این من هستم که باید اول برم. برادر قول جوون گفت نه اجازه بده من برای انتقام اونجا برم. من اولین نفر بودم که برای این کار پیش قدم شدم. و بعد به سمت دهانه آر درمیم. فینلای در خونه کوچیک خودش منتظر حمله قولها بود. در رو محکم بسته بود. و آتیش زغال توی بخاری شغله می کشید. اما او از سرمایه ترس میلرزید و با دقت و نگرانی به هر صدایی گوش می‌داد تا اینکه از فاصله دور صدایی شبیه صدای رعد و برق شنید. سنگ های کناره تپه با صدا پایی می و وقتی قول سرعت می گرفت گله های با سر و صدا به این طرف و آن طرف پاشیده میشدند. فینلای میدونست که این قولیه که به سمت خونش میاد. طولی نکشید که قررش و نعره از خارج از کل بشنیده شد. فیت فیت فات فود در رو باز کن و بزار داخل بشم. اما قون منتظر شکارچی نموند و با سر و صدا در رو باز کرد. شکارچی پشت شعله های آتیش درست در وسط اتاق ایستاده بود. او تیر و کمونش را آماده کرده بود اما وقتی قول وارد شد نتونست قول را بکشه. قول فریاد زنان به سمت فینلای خیز برداشت اما سگهای شکارچی به سمت قول حمله بر شدند. و شکارچی تیر دیگه ای پرتاب کرد. تیر به قول برخورد کرد و اونو از پای در آفرد. صبح روز بعد فینلای با عجله نزد پیرزن دانا رفت و سر قول را هم با خودش برد. پیرزن گفت دیشب چیکار کردی مرد جوون؟ فینلای اونجرا که شب قبل اتفاق افتاده بود تعریف کرد و گفت که چطور سکها در پشتن قول به او کمک کردند. پیرزن دانا گفت بله ولی هنوز این سکها اونطور که باید به تو کمک نکردند. عصر شکارچی به خونه برگشتون نگرون کنار آتیش نشست. شب شده بود و باز صدای قلصیدن سنگها و پاشیده شدن گلولای به لبه پرتکاه به گوش رسید فینلای میدونست که قول ترسناک دیگهای برای انتقام سراغ او میاد ناگهان نعرهای بلند و وحشتناک در خونه پیچید فوت فوت فوتی باز کن اگر چه تونستی پسر منو بکشی اما نمیتونی هیچ آسیبی به من برسونی و بعد در با صدای بلند باز شد و تمام خونه به لرزه در اومد. فینلای ترسید که همیه الان سخف خونش بریزه. او که آماده بود اولین نیزه خودش رو به سمت قول انداخت و بعد کمی صبر کرد و دومین تیر خودش رو هم پرتاب کرد. تیرها فقط قول رو زخمی کردند. اون فینلای شمشیر خودش را بیرون کشید و ضربه سختی به قول پنج سر وارد کرد. اما این کار هم بیفایده بود و قول همچنان زنده بود. فینلای سکهاش را به طرف قول فرستاد و سکه درنده به جون قول افتادند و زخمای سختی بر بدن او وارد کردند. فینلای هم به کمک سکه رفت و با تلاش زیاد تونست گول پنج سر رو از پای در بیاره صبح روز بعد باز شکارچی راهی کلبه پیرزن دانا شد گفت دیشب شب بدی رو گذرانده و تا ساره مرگ با غول مبارزه کرده سرانجام با کمک سکها تونست غول رو به هلاکت برسونه پیرزن دانا گفت هنوز اونطور که باید و شاید سکها به تو کمک نکردند تو باز به کمک اونها احتیاج داری امشب خود عجوزه به سراغت میاد تا انتقام پسر و شوهرش رو از تو بگیره باید خیلی مراقب باشی او با صدای نعره و اربده نمیاد آروم و بیسر و صدا میاد و تو رو با صدای گرم و دلنشین صدا میکنه و اجازه میخواد داخل خونت بشه اما در واقع قصد جون تو رو داره چیزایی را که به تو میگم خوب گوش کن و انجام بده. پیرزن سفارش های لازم رو به شکارچی جوون کرد و شکارچی به خونش برگشت. شب تاریکی خودش رو در همه جا گستراند. فینلای به تنهایی انتظار میکشید و سکوت اون را میترسند. او از این سکوت بیشتر از صدای رعد و برق میترسید. که در دو شب قبل شنیده بود. فینلای کنار اجاق سوزان نشسته بود اما از سرمایه ترس می لرزید و انتظار میکشید. گوش میکرد صدای صدای می گوش می کرد تا بالاخره صدایی شنید. صدایی شبیه خشخش وزش باد روی برگهای خشک. بعد از لحظه صدای ضعیف و بیمارگونهی شنید. من پیرزن ناتوانی هستم و نیاز دارم امشب جایی بخوابم و استراحتی کنم و غذایی بخورم لطفا در رو باز کنید و اجازه بدید وارد شم فینلای در و باز کرد و پیرزنی را پشته در دید و گفت اگه قول بدی آروم و معدب باشی و قصد آزار و عذیت منو نداشته باشی میتونی وارد بشی اجوزه که خودش رو به شکل پیر زنی فقیر و درمونده و خسته در آورده خست بود، وارد شد. متوازانه نگاهی به شکارچی انداخت و کنار آتیش درست مقابل فینلای نشست. بعد دستهاش رو به سمت آتیش دراز کرد تا اونها رو گرم کنه. به اطراف و گوشا و کنار خونه هم نظر انداخت. دید که سه سکی شکارچی، پایین اتاق برای خودش دارن پرسه میزنند و با عصبانیت خرناس میکشن و دندونهای تیزشون رو هم به نمایش میزارند پیرزن گفت سگهای درندهای داری لطف کن اونها رو با تناب ببند. شکارچی جواب داد اما اونها هیچ آزاری به یه پیرزن آروم نمیرسونن. پیرزن گفت اما بههرحال لطف کنید اونها رو ببندید واقعا از این سگ‌های عصبی میترسم. فینلای گفت نمیتونم این کار کارو بکنم چون وسیله برای بستن اونها ندارم. و پیرزن گفت کلاه من سروبان بلند و قرمز داره که خیلی محکمه و حتی میشه از اونها به عنوان لنگر کشتی استفاده کرد. فینلای س نوار رو از پیرزن گرفت تا ترتیب بستن سکه ها رو بده. اونها رو گوشی خابون و وانمود کرد که سکه را بسته. پیرزن پرسید سگا رو خوب بستی؟ فینلای جواب داد خودت می که سکه کنار هم آروم خوابیدند. پیرزن به سکه نگاه کرد و باور کرد که اونها رو با رو قرمز بسته و آزاری به او نخواهند رسوند سپس لبخندی زد و مدتی آروم کنار آتیش نشست فیلای که مقابلش نشسته بود بعد از مدت کوتاهی متوجه شد که پیرزن داره بزرگ و بزرگتر میشه از ترس فریاد زد چیکار میکنی؟ انگار داری بزرگ و بزرگتر میشی؟ پیرزن گفت آه نه عزیزم سرمایه هوا باعث شده کمی چروکیده و جمع بشم. اما حالا کنار این آتیش گرم احساس میکنم دارم کمی بازتر میشم. باز سکوت برقرار شد. فینلای دوباره نگاهی به عجوزه انداخت و فریاد زد. نه واقعا داری بزرگ میشی و در این شکی نیست. شاید از این کار خوشت بیاد اما نمیتونی این کار را بکنی. اجوزه با و عصبانیت گفت. ولی درست میگی من دارم بزرگتر میشم و تو داری ازم میترسی و هم دلیل داره. چون تو همسر و پسرم رو کشتی ولی مطمئن باش که امشب من تو رو میکشم. بعد از گفتن این حرف رو از جا پرید و تمام خونه به لرزه در اومد. هم از جا پرید ولی اجوزه سری موهای سر اون رو و گفت قول دادم داخل خونه آزاری بهت نرسونم. قول خودم را نمیشکنم اون وقت کشون کشون اونا به سمت در برد. هر سه سگ از جا بلند شدند و پارس کنن به سمت جادوگر دویدند فیندای به سختی تلاش کرد تا خودش رو از دست اجوزه رها کنه اون دوتا به هم پیچیدن جلو و عقب میرفتن مادر قول میخواست خیلی سریع بدون تلف کردن وقت شکارچی رو بکشه اما ها به او حمله ور شدند و فینلای بالاخره تونست با کمک اونها اجوزه رو به زمین بندازه و اجوزه روی بازوهای خود افتاده بود ها به سختی روی او قرار گرفتند و اجازه نمی‌دادند حرکت کنه اجوزه فریاد زد بگذار بلند شم فینلای گفت نمیذارم اگه این کار بکنی پاداش خوبی به تو میدم. چه چیزی در مقابل جون خودم به من میخوای بدی؟ چمدانی بزرگ از طلا و چمدانی از نقره که داخل قار دارم به تو میدم. با شکست تو همه تلاها و نقرهات به من میرسه. شمشیر دست طلایی خودم را هم به تو میدم. قول میدم تا با این شمشیر میتونی در مقابل هر شخصی یا جونوری پیروز بشی. از حالا هم شمشیر در دستهای خودم حس میکنم یه عصای جادویی دارم که اگه منو رها کنی به تو تقدیم میکنم استحه بینظیریه اگه اون رو به یه ستون سنگی بزنی ستون به یک جنگجو تبدیل میشه و وقتی این جنگجو اون شمشیر رو تو دستش بگیره میتونه دنیا رو برای تو فتح کنه اسا هم از حالا در اختیار منه چه چیز دیگه ای میخوای به من بدی تا تو نریزم. افسوس دیگه چیزی ندارم. پس من هم تو رو می تا دنیایی از شر تو آسوده و بشه. فینلای اجوزه خاکستری را کشت و بعد به سرعت مقداری خزه قرمز روی زخمهای خودش گذاشت و زخمهاشت. بهبود یافتند. صبح روز بعد شکارچی سراغ پیرزن دانا رفت و به او گفت که چگونه سکها جونش رو نجات دادند. پیرزن گفت آفرین جوان شجا قدر سکها تو بدون که باز هم به کمک اونها احتیاج پیدا خواهی کرد فیلای گفت نمیدونم چطور میتونم گنجای داخل غار، شمشیر دست طلایی و عصای جادویی رو به دست بیارم. پیر پیرزن دانا گفت: امشب من و دخترم همراه تو به غار میایم و من عصای جادویی خودم رو هم میارم. وقتی هوا تاریک شد، هر سه به سمت غار حرکت کردند. به دهانه غار که رسیدند، داخل غار خزیدند و آتش روشن کردند. طوری که دود سر تا پای قول جوان داخل قار را پوشون و قول جوون به سمت دهانه غار خزید او به سختی در میون دود نفس کشید. هیچ شده بود و چشمش جایی رو نمیدیدند تنها نور ضعیفی مقابلش دیده میشد فینلای کمون خودش رو آماده کرد و گفت الان شلیک میکنم پیرزن به شکارچی اختار داد که تیراندازی نکنه گفت تنها یک زخم میتونه قول جوون رو درنده در کنه. و سکها هم میون این دود کارایی لازم رو ندارن چون در تاریکی قادر نیستند قول رو ببینند. پس باید بذاریم قول به سمت روشنایی فرار کنه. من با عصای خودم فقط میتونم یه ضربه به او وارد کنم. اگه ضربه من اثر نکرد، تو با کمون خودت تیراندازی کن. گول جوان آتش را به این سو و اون سو پرت کرد تا از غار خارج شد اما قبل از اینکه بتونه از جا بلند بشه پیرزن دانا با عصای جادویی خودش ضربه‌ای به سر او زد و غول افتاد و مرد آنها دوباره وارد غار شدند و جسد خاهر شکارچی را اونجا پیدا کردند او در غار قول ها زندانی شده بود و سرانجام نتونسته بود زنده بمونه. فینلای تمام گنج های قار رو خارج کرد و به کلبه پیر زن دانا برد. ابتدا اصای جادویی را امتحان کرد و با اون ضربه ای به یک ستون سنگی زد و همانطور که عجوزه گفته بود ستون تبدیل به یک جنگجو شد. و فینلای با ضربه ای دیگر که به جنگجو زد دوباره او به شکل اول خود برگشت واخوشحالی فریاد زد واقعا شگفتانگیزه پیرزن دانا گفت بله همینطوره تو باید روز بعد به دیدن شاه بری و تمام این اتفاقها را برایش تعریف کنی اما باید قول بدی که هرگز وارد کاخ شاه نشی روز بعد فینلای عازم قصر پادشاه شد وقتی به اونجا رسید به خدمتکاران گفت به شاه اطلاع بدن که او قولهای بزرگ رو به قتل رسونده و بگن که حالا قهرمان شجا بیرون کاخ منتظر دیدنشه چون بنابر قولی که داده بود خودش نمیتونست وارد قصر شاه بشه شاه از قصر خود خارج شد و نصفینلای آمد و به او گفت به قصر من بیا با دخترم شاهزاده خانم ازدواج کن. تو به این ترتیب صاحب نیمی از سرزمین من خواهی شد و بعد از مرگ من نیز وارث تمام سرزمین پادشاهی خواهی بود. فینلای گفت من از شما ممنونم اما نمیتونم وارد قصر شما بشم. فینلای این را که گفت به سمت یک ستون سنگی خاکستری حرکت کرد و با عصای جادویش ذربهای به ستون زد ستون در مقابل چشمهای متعجب شاه تبدیل به یک جنگجو شد و فینلای باز با ضربهای جنگجو را به شکل ستون برگردند شاه گفت عجیب است تا کنون چنین چیزی را ندیده بودم شاه وارد قصر شد و دستور داد تا سربازان فینلای را معطل کنند تا او برگرده اما وقتی سربازان به اونجا برگشتند اثری از فینلای نبود شاه ای از سربازان سواره و پیاده رو به جستجوی فینلای فرستاد ولی کسی اثری از او پیدا نکرد شکارچی جوون هم با دختر پیرزن دانا ازدواج کرد و با ثروتی که از قولها به دست آورده بود سالهای سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصرهای باشکوه و, و مهمانی بزرگ شاهانه قصه های از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته